به کفش دوستان و آشنایان و مردم کوچه و بازار وصله و پینه میزد و شب هنگام که به خونه می رسید هر چه گیرش اومده بود دو دستی تقدیم زنش می کرد. مرد درآمد بدی نداشت و به اون چه که کم یا زیاد به دست می آورد راضی و خوشنود بود و خدا رو شکر می کرد اما در عوض تا دلتون بخواد زن او ناشکر و بلند پرواز بود طوری که مثلا اگه مرد در روز صد دینارم به دست می آورد یه جور غور می زد و اگه روز دیگه یک دینار گیرش میومد یک جور دیگه خلاصه اینکه این زن از کارش شوهرش هرش که پینه دوزی بود خوشش نمیومد و دایم هم اینو اون رو به رخ اون بنده خدا میکشید. کشید مثلا اگه یه روز به هممام می سر و وضع زن فلان سرهنگ رو میدید. شب که مرد به خونه میومد کلی به اون بیچاره طعنه میزد که چرا سرهنگ نشده نشوده. به عکس اگه روز دیگه زن یه منشی دربار رو تو کوچه و خیابون میدید که داره با لباس گرانبها راه میره و همه بهش احترام میگذارن شب باز این قضیه رو به رخ شوهر نگونبخت خودش میکشید و آه و افسوس می خود که چرا اون نمی بایست چنان شکوه و بزرگی داشته باشه. بر و در یک کلام زن از اون زنهایی بود که به پول و, و زیور دنیا دل بسته بود و دلش میخواست شوهرش از هر راهی که شده برای او پول و مال و منال فراهم کنه القصه چرخ روزگار میگشت و زندگی پیندوز و زنش به همین صورت کجدار و مریض ادامه داشت که روزی از روزها زن خبری شنید که گل از گلش شکرد بله خبر از این قرار بود که پادشاه خوابی دیده بود که هیچ خوابگذاری نتونسته بود اون رو تعبیر کنه و شاه هم گفته بود به هر کس که بتونه خوابش رو تعبیر کنه پول زیادی میده بله زن تا این خبر رو شنید به یاد شوهرش افتاد و بدون اینکه که فکر رو تعملی کنه و جوانه به کار رو بسنجه با خودش گفت شوهرم چند بار که من خواب دیده بودم تعبیرش رو به هم گفت بنابراین حتما خواب شاه رو هم میتونه تعبیر کنه و اون وقتی که حسابی پولدار میشیم و من هر چه دلم بخواد میتونم بخرم آره این فرصت خوبیه و نباید از دستش بدم باید هر چه زودتر به دربار شاه برم و قضیه رو بگم چه رده سرتون بدم، دوستان زن رفت و به هر صورت که بود خودش رو به دربار و نزد شاه رسون شاه با دیدن زن سری تکون داد و گفت. شنیدم اومدی خواب ما رو تعبیر کنی ها؟ زن بعد از تعظیم و ستایش شاه گفت خیر قربان، بنده کی باشم که خواب چون شما اعلی حضرتی رو تعبیر کنه من زن بدبخت و نادون یه پین دوزم که در راسته بازار مغازه داره اما هرچه من نادونم شوهرم داناست این مرد در تعبیر خوابهای گوناگون استاده اون اونقدر بخیله که هنرش رو در اختیار مردم قرار نمیده نمیدونم شایدم از این کار خوشش نمیاد به هر اون خیلی کم به این کار میپردازه و اونم در مواقی که زور و تهدید بالای سرش باشه بله دوستان زن بعد از این حرفها و نام و نشونی شوهرش رو به شاه داد و دنبال کارش رفت شاه که از حرفای زن شاد شده بود خندهی کرد و بعد بیدرنگ کسی رو به دنبال پینه دوز فرستاد و چیزی هم نگذشت که پین دوز در دربار شاه حاضر شد. پیندوز تعظیمی کرد و در حالی که دل تو دلش نبود روبروی تخت شاه ایستاد. شاه ابتدا کمی سرتاپای پینه دوز رو برانداز کرد و بعد گفت پس پیندوز دوز خواب گذار تویی. بسیار خوب حالا ما خوابمون رو میگیم تا تو اون رو برامون تعبیر کنی البته همونطور که حتما شنیدی تا حالا هیچ کدوم از خوابگزارهای ما نتونستن خواب من رو تعبیر کنه دلیلش هم اینه که من اصلا خوابی رو که دیدم به یاد نمیاره بله دیشب من خوابی دیدم که به طور کلی از یادم رفته هرچه هم کوشش میکنم و به حافظم فشار میارم چیزی به یاد نمیاره تنها چیزی که یادمه اینه که خواب دیدم حالا تو با اون دانشی که داری از صورتم بهون که دیشب چی خواب دیدم و تعبیرش چیه پین دوز نزدیک بود از شنیدن این حرف شاه و غشت کنه و بیفته ولی هرجور بود خودش رو سر پا نگه داشته با ترس گفت جسارت نشه قربان ولی خدا نبخشه اون کسی رو که این تهمت رو به من زده الهی خیر از زندگیش نبینه کسی که خواسته این نون رو تو سفره من بگذره آخه من بدبخت نادون رو چه به خواب گذاری؟ من دو دوتا الاغ رو نمیتونم درست قسمت کنم اون وقت شما چجوری میخواید خواب شما رو تعبیر کنم؟ اونم خوابی رو که اصلا معلوم نیست چی بوده؟ شما رو به خدا دست از سرم بردارید و اجازه بدید دنبال کارم برم شاه وقتی حرف های پین دوز رو شنید با خودش گفت انگار اون زن راست میگفت که پین دوز به آسونی تن به این کار نمیده بعدم در حالی که از خشم سبیل هاشو میجوید به مرد گفت خب اینجور که معلوم شد تو با ما مخالفی و با زبون خوش نمیخوای دانشت رو در اختیار ما بگذاری برای همین دستور میدم اونقدر چوبت بزنن که زیر شکنجه زبون باز کنی یا حرف بزنی بله دوستان و به دنبال این حرف چند نگهبان جلو اومدن و با چند چوب کلفت به جون مرد نگونبخت افتادن بیندوز چندین ضربه رو تحمل کرد ولی دید اگه بخواد همین جور کار ادامه پیدا کنه زیر ضربات چوب به اون دنیا میره برای همین از سر ناچاری به حرف اومد و گفت که خواب شاه رو تعبیر می کنه انتها به شرطی که سه روز به او مهلت بده شاه پذیرفت و دستور داد او رو آزاد کنن به این شرط که در پایان روز سوم اگه نتونه کاری کنه سرش برباد بره این دوز دو روز رو با اندوه و ناله و زاری به درگاه خدا و کمک خواستن از او پشت سر گذاشت روز سوم که رسید از غصه و ناراحتی سر به بیابون گذاشت تا بلکه خوراک حیوانی و جونوری بشه و به چنگ شاه نیفته بله او مثل دیوونه ها آواره و سرگردون اونقدر توی دشت و بیابون راه رفت تا اینکه خسته و مونده تا تک درختی نشست او ناامید و دلمرده با خدای خودش راز و نیاز میکرد که یک دفعه ماری از سوراخی سر بیرون آورد مار از جانب خدا به زبون اومد و از علت گریه و زاری او پرسید و کفش دوست هم با دلی شکسته و دردمند قضیه رو برای مار تعریف کرد مار گفت خب مرد اگه من کمکت کنم و برات بگم که شاه در خواب چی دیده و تعبیرش چیه قول میدی از اون چه به تو میده سهمی هم برای من بیاری کفش روز مثل کسی که از خواب بیدار شده باشه با ناباوری چشمهاش و کمی مالید و نگاهی التماس آمیز به مار کرد و گفت تو بگو من هر چی رو گرفتم میدم به تو مار گفت نه من همه رو نمیخوام تو فقط قول بده که نیمی از اون چه شاه به تو میده برای من بیاری مرد گفت به چشم. قول میدم قول مردونه مار گفت بسیار خوب پس گوش کن شاه در خواب دیده از آسمون تعداد زیادی شیر و پلنگ و ببر و گرگ و حیوانای درنده دیگه باریده تعبیرش اینه که به زودی دشمنانی قوی پنجه و جنگجو و ستیزگر از اطراف و اکناف به سرزمین شاه یورش میارن ولی همه اونها از سپاهیان شاه شکست میخورن و سرکوب میشه. خب حالا برو و با خیال راحت موضوع رو برای شاه بازگو کن پین دوست که از شادهی در پوست خودش نمیگنجید از مار سپاسگزاری فراوون کرد و از جاش بلند شد و به طرف شهر به راه افتاد به خونه رفت و بعد از دو روز و دو شب ناراحتی با خیال آسوده غذای خورد و استراحتی کرد بعد از جاش بلند شد و دست و صورتی شست و لباس نوی پوشید و به طرف دربار براه افتاد زن که از این حرکات شوهر سر در نمی آورد شگفت زده پیش خودش گفت معلوم نیست تو کله این مرد چی میگذره؟ پیش از ظهر از زور ناراحتی سر به بیابون گذاشت و حالا با خیال راحت داره به دربار میره القصه اصف بود که پین دوز به دربار رسید شاه با دیدن او لبخندی زد و گفت چی شد خواب گذار شیری یا روباه پین دوز تعظیمی کرد و پاسخ داد از لطف و کرم خدا و به اقبال بیزوالتون شیر تا جایی خلوت میخوام که شاه حرف پین دوز رو قطع کرد و گفت بسیار خوب فهمیدم و بعد با اشاره دست همه کسانی رو که در اطرافش بودن مرخص کرد. پیندوز وقتی تالار کاخ رو خالی از غیر دید لب به سخن باز کرد و اون چه رو که از مار درباره خواب شاه و تعبیر شنیده بود بازگو کرد. شاه که از سخنان سنجیده پیندوز شگفت زده شده بود به او آفرین گفت و فرمان داد تا هزار دینار بهش دادن و با عزت و احترام بسیار هم بدرقش کردند این دوست با دیدن خلعت و کیسه زر و اون عزت و احترام از شادی روی پا بند نبود. شادمان و سربلند سکه زر رو گرفت و به خونه برد و سبب شرمندگی زنش شد. اما هنو ساعتی نگذشته بود که مار رو به یاد آورد و با خودش گفت طبق قراری که داشتیم نصف این سکه ها رو باید به مار بدم ولی اگه سحم او رو بدم خودم در آینده دچار سختی میشه از طرفی اگه چیزی هم بهش ندم بیگمان تصمیم میگیره که به سراغم بیاد و منو بکشه بنابراین بهتر پیش دستی کنم و من او رو بکشم تا خیالم آسوده بشه بله دوستان و با این فکر چوب دستی کلوفتی برداشت و از شهر بیرون رفت و به سمت درخت راه افتاد همین که به در لونه مار رسید او رو صدا کرد مار بیرون اومد ولی همین که قیافه مرد و چوب دستی او رو دید فوری بوی خطر رو احساس کرد و تصمیم به فرار گرفت البته موفقم شد و جون به در برد با این حال سر چوب دستی به دومش خورد و کمی اون رو زخمی کرد بله ماره زخم خورده با دومی دردناک توی سوراخ خزید در حالی که با خودش می گفت آیا این سزای نیکی؟ سال بعد شاه خواب دیگه دید و باز هم مثل دفعه قبل فراموش کرد که چی در خواب دیده. بله و همونطور که حد میزنید، باز پینه دوز رو احضار کرد. پینه دوز طبق روال سال پیش مهلتی خواست و از اونجا بیرون اومد. او نگران و شرمسار و افسرده تو کوچه راه میرفت و با خودش میگفت فکر اینجا رو نکرده بودم و دوراندیش نبودم. ولی خب جای شکرش باقیه که مار رو نکشتم وگرنه کارم زار بود خلاصه با شرمساری راه لونه مار رو در پیش گرفت و در حالی که پیوسته خودش رو سرزنش میکرد به اونجا رسید ایستاد و با زبان ملایم و های مهربانانه مار رو از سوراخ بیرون آورد و از او به سبب رفتار گذشتهش پوزش بسیار خواست بعدم قضیه خواب شاه رو گفت مار با خودش گفت گرچه چه گفتن به نمک نشناس یاری رسوندن کاری ناسوابه ولی خب یک بار دیگه بهش کمک میکنم تا ببینم نتیجه چی میشه بنابراین پوزش او رو پذیرفت و حرفاش رو قبول کرد ولی گفت این بار شرط اینه که هر چه به تو دادن همه رو بیاری و به من بدی کفشوس قول داد که حتما این کار رو میکنه و تازه جبران بدقولی گذشته رو هم خواهد کرد مار گفت بسیار حب. وقتی به دربار رسیدی به شاه بگو خوابی که دیده این بوده که از آسمون تعداد زیادی روباه و شغال باریده و بعدم تعبیرش رو برای مرد گفت باری مرد پین دوز به دربار اومد و نزد شاه رسید و چیزهایی رو که از مار شنیده بود برای شاه بازگو کرد و در تعبیر خواب هم چنین گفت ای شاه این بار دشمنان مکار و هیلگر و دو و به تو رو میارن ولی از اقبال بیزوال شما همه اونها گرفتار اعمال و کردار خودشون میشن چون به هم دروغ میگن و نیرنگ میزنن بینشون دو دستگی میفته و هم دیگر رو نابود میکنن شاه دستور داد تا هزار دینار دیگه به پین دوز بدن و با شکوه بیشتری او رو بدرقه کنن و اما دوستان پین دوز وقتی کیسه های ذر رو دید اهد و پیمانی رو که با مار بسته بود از یاد برد. با خودش گفت اصلا نمیدونم این مار پول رو میخواد چه کنه او که قصاب یا نونوا نمیشناسه و کفش یا کلاه که مورد نیازش نیست که بخواد بابت اونها پول بده پول مال ما آدم هاست نه برای مارها او همینقدر که نکشتمش باید کل نیست پاسگزار من باشه و به جونم دعا کنه بله عزیزان و با این حرفها بود که جناب پین دوست خودش رو راضی کرد که دیناری به مار نده و ما روزها و شبها سپری می شدن و مار در انتظار بود و پین دوز بی تا اینکه یک سال از این حکایت گذشت و طبق معمول روز از نو و روزی از نو جناب شاه بازم خواب نما شد و پین دوز رو به حضور خواست بقیهش هم که معلومه پین دوز با دلی پریشان و لب و لوچه آویزون و شرمنده و حراسان به در لونه مار ره. او رو صدا زد و بعد کلی التماس و خواهش و زاری کرد تا از گناهش چشم بپوشه مار دقایقی به هفهای مر توجه نکرد ولی بالاخره بیرون اومد و باخش گفت: ای بد عهد سست پیمان بازم که اومدی با کدوم کارنامه نیکو و با چه سابقه درخشانی تا به حال چند بار سهلنگاری کردم و گول چرب زبونی های تو رو خوردم ولی چیزی گیرم نیومد تازه از دست چوبم خوردم و حرفهای بی‌موردی شنیدم که روان و جانم آزرده شد با این همه حالا بازم اومدی که منو فریب بدی بین دوست همونطور مونده بود نه زبونی داشت که عذرخواهی کنه و نه توانایی داشت که حرفی بزنه با همه نامودی و سیاه که از رفتار زشت گذشتش داشت گفت من نمیدونم چی بگم و نمیتونم عذرخواهی کنم. فقط میگم که بزرگان و جوانمردان بخشش رو بر انتقام ترجیح میدن و گناهکاران رو میبخشن. بنابراین بیاو یه بار دیگه بزرگواری کن و دستم رو بگیر. مار وقتی آه و زاری فراوان مرد رو دید گفت بسیار خوب کمکت میکنم. به شرط این که هر مزدی رو که پادشاه در این نوبت به تو داد و هر رو که در گذشته گرفتی برای من بیاری تا در اینجا همه رو با هم قسمت کنی مرد قول داد و تعهد سپرد و بسیار سوگند یاد کرد که این بار به اونچه چه که مار میخواد عمل کنه و درست کاری خودش رو نشون بده مار گفت باشه پذیرفتن، حالا برو به شاه بگو که در خواب دیدی که از آسمون تعداد زیادی گوسفند و بره و امثال اون باریده. تعبیرشم اینه که از این به بعد در سایه شکوه و جلال و انصاف دولت تو همه مردم رنگ موافق پیدا می‌کنن و با تو هم عقیده و هم فکر میشن. جنگ و ستیز و کینه و دشمنی رو کنار می‌زنن و امنیت و آسایش به کشور رو میاره و وضع به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه. کنه پی با شنیدن جواب از مار سپاس کرد و با شتاب خودش رو به دربار رسوند و اون جروع که از مار شنیده بود برای شاه تعریف کرد شاه از شنیدن این خبر بسیار خوشحال شد به نفعی که از جا بلند شد و در طول تالار شروع به قدم زدن کرد و در حالی که از زور خوشحالی دستار رو به هم میمالید، فرمان داد دو هزار دینار از خزانه به او بدن مقام هم در ردیف اعیان و اشراف به او دادن و لقبی در خور اون مقام بیه پین دوز برگذیدن. سخن کوتاه دوستان مرد که دیگه همه چیز به دست آورده بود با خودش گفت دیگه خلاف عهدی و بیتوجهی به قول و قرار رو کنار میگذره من هرچه دارم از اون ماره بنابراین نباید او رو فراموش کنم این بار چه به هم حدیه کردن به مار میدم به خصوص که با این موقعیتی که پیدا کردم در آینده با مشکلات فراوانی رو برو میشم و مسلما به اون نیاز پیدا میکنه. پس بهتر چراغی بهر تاریکی نگه دارم بله عزیزا و با این فکر پین 3000 سه هزار دیناری رو که در دست رس داشت پیش مار برد جلو لونه اونها رو زمین گذاشت و آهسته و آروم مار رو صدا زد در بعد جونور بیرون اومد مرد های زر رو پیش او گذاشت و ضمن پوزش خواهی از کارهای گذاشته خودش گفت بدون که اون چه زر در دستم بود به اینجا آورده حالا اختیار با توه هر طور که میخوای عمل کن مار گفت حالا که اومدی و زر هم آوردی آگاه باش که در برابر اونچه که آوردی ازت سپاسگذاری نمی نمیکنم و به اونچه هم که نیاوردی از تو بازخواست و مطالبه نمیکنم که هرچه اتفاق افتاد همه رنگ روزگار داشت یعنی همه مردم در هر زمان همین صفت رو داشتن که تو داشتی و نشون دادی و اما بار اول که به من ضربه زدی و درد و رنج به من وارد کردی در اون سال شرارت و حسد و فتنجویی بین مردم رواج داشت نوبت دوم که منو گول زدی و با من نیرنگ به کار بردی زمانی بود که بیشتر مردم چاپلوس و فریبکار و حیلگر بودن و این صفتهای زشت بر سرشت همه غالب بود یعنی عموما صفت شغال و روباه رو داشته و اما حالا که به گفته خودت عمل کردی و جور و جفا رو از خودت دور کردی و وفای به عهد و پایبندی به قول و قرار رو واجب دونستی بدون که مردم زمان هم بیشتر همین صفت رو خواهند داشت و تو به علت ضعف شخصیتت از مردم زمان خودت جدا نیستی؟ و با اونها تفاوتی نداری حالا به تو مجده میدم که همسرت هم اون خوی زشت یعنی توندخوی رو فراموش کرده و از این به بعد با تو به خوبی زندگی خواهد کرد حالا این سکه های زر رو هم بردار و برو و بدون که من از اول هم محتاج اونها نبودم و فقط برای آزمایش تو اون حرف رو زیاده